به نام خدای یگانه مهربان سلام. در این فرصت افسانه دوازده برادر رو براتون تعریف میکنم برگرفته از کتاب کاربرد‌های افسون نوشته دکتر برونو بتلهایم، روانشناس و دانشمند اتریشی تبار که امروزه از جمله بزرگترین شناسان کودک به شمار میره با ترجمه از دکتر کازم رضوی امیدواریم که تا پایان این قصه خانی همراه ما باشید و از شنیدن افثانه دوازده برادر لذت ببرید در های بسیار قدیم، پادشاه و ملکی در کمال صلح و صفا زندگی کردند. اونها صاحب دوازده پسر بودن و آرزو داشتن روزی صاحب دختری بشن. روزی از روزها پادشاه به همسرش که چیزی به زمان زایمانش باقی نمونده بود گفت اگه سیزدهمین فرزندمون دختر باشه کاری میکنیم که، همه پسر هامون بمیرن تا دختر یکی یک دونمون ساخب تمام ثروتهای های ما بشه و تنها وارث کشور پادشاهی ما باشه ملکه از شنیدن این حرف همسرش اندوهگین شد ولی نمیتونست حرفی روی حرف پادشاه بزنه پادشاه دستور داد دوازده تا تابوت ساختن و داخل اونها رو پر از تیغه های خنجر کردن ملکه با دیدن تابوتها به گری افتاد ولی پادشاه با بی تابوتها تابوت رو در اتاقی که در انتهای قصد قرار داشت پنهون کرد و کلید اتاق رو به ملکه داد ملکه با اکراه کلید رو گرفت و دوباره به گری افتاد پادشاه از این کار همسرش عصبانی شد و تأکید کنن به ملکه گفت یادت باشه در این باره با کسی صحبت نکنی وگر نه و ادامه حرفش توی پچپچ گنگ گنگ شد از این ماجرا گذشت و ملکه روز به روز می می‌شد تا اینکه بنیامین کوچک‌ترین پسر پادشاه که همیشه در کنار مادرش بود با کنجکاوی از مادرش پرسید مادر جان چرا اینقدر غمگین و ناراحتی ملکه مادر آه بلندی کشید و دستی از سر مهر و نوازش بر سر کوچکترین پسرش کشید و گفت اه. پسر عزیزم من اجازه ندارم علت غمگین بودنم رو به کسی بگم بنیامین گفت ولی مادر من من نمیتونم غمگین بودن شما رو تحمل کنم مادر لبخند ترخیزده گفت میدونم پسرم میدونم تو پسر مهربونی هستی بنیامین مادر رو آسوده نزاشت و اونقدر اصرار رو خواهش کرد تا اینکه ملکه به زبون اومد و گفت بنیامین عزیزم پدرت این تابوتها رو برای تو و یازده برادرت دیگت ساخته تا اگه من دختری به دنیا بیارم همه شماها رو نابود کنه و عشق از چشمهای ملکه سرازی شد بنیامین که طاقت دیدن های زلال مادر رو نداشت گفت مادر جان، گست نخور ما میدونیم چجوری از جون خودمون محافظت کنیم گست نخور مادر با نگرانی پرسید چجوری بسرم، چجوری؟ بنیامین فکری کرد و به آرومی گفت ما همین امشب اینجا رو ترک میکنیم مادر مادر با خوشحالی گفت فکر خوبیه پسرم خیلی بعد صداشو پایین آورد و ادامه داد یکی از شماها باید بالای درختی بره و از اونجا برج قصد رو زیر نظر بگیره بنیامین با تعجب پرسید خب مادر این کارا برای چیه؟ مادر با همون صدای آهسته گفت برای اینه که اگه من پسر به دنیا آوردم از برج قصد یه پرچم سفید آویزون می و شما میتونید با خیال راحت به قصر برگردید. اگه دختر به دنیا آوردم یه پرچم سرخ آفیزو میکنم و شما باید هرچه زودتر از اون حوالی دور بشید. بنیامین زیر گوش مادرش گفت مادر جان من مطمئنم شما دختر به دنیا میارید. این حرف بنیامین مثل گلوله ی آتشی بود که مادر رو به آتش کشید. لحظی چشمشو بست و اندوه امینی وجودش رو در بر رفت نگاه از ستبارش به بنیامین خیره موند بنیامین خودش رو به مادر نزدیکتر کرد و بردستان گرمش بوسه زد مادر زیر لب دعا کرد ای خدای مهربون ای خدای مهربون مواسق به من باش و اونا رو در پناه خودت نگردار از جا بلند شد و گفت باشه مادر من میرم تا برادرامو از نخشی پدر آگاه کنم و مادر با لبخندی تلخ کوچکترین فرزندش رو در تاریکی شب بدرقه دیری نگذشت که یازده برادر دیگه از نقشه پدر آگاه شدند و قرار گذاشتن فردا قبل از طلوع سپیده راه جنگل رو در پیش بگیرن اونا برای خداحافظی به دیدن مادرشون رفتن و بردستای مهربون مادر بوسه زدن و قول دادن که یه روزی برگردن چیزی به صبح باقی نمونده بود و زمان زمان رفتن بود خ رتم اندوه بر چهره ی مادر مینشستد ملکه به درگاه خداوند میروون دعا کرد. پسرهای پادشاه به محض ورودشون به جنگل بلندترین درخت جنگل را انتخاب کردن و یکی از دوازده برادر برای نگهبانی از اون بالا رفت این کار یازده روز ادامه داشت ولی هیچ خبری از پرچم سفید یا سرخ مادر نشد روز دوازدهم که نوبت نگهبانی بنیامین رسید ترس عجیبی توی وجودش داشت. با نگرانی خودش رو به بالای درخت رسوند و از دیدن چیزی که دید وحشت کرد بله روز دوازدهم پرچمی به رنگ خون از برج قصر آویخته شده بود بنیامین با سرعت از درخت پایین اومد و این خبر رو به برادرای دیگش داد یکی از برادرها با ناراحتی گفت یعنی ما دوازده نفر به خاطر یه دختر کشته بشیم؟ به بعد قرار گذاشتن، هر دختری رو دیدن، اونو نابود کنن و همه یک صدا سوگند خوردن که این کار رو انجام بدن بنیامین فکر کرد و گفت ما باید هرچی زودتر از اینجا بریم، اینجا موندن خطرناکه و بعد به برادرش گفت چه زودتر آماده ی رفتن بشین و برادرها که از این وضعی که پیش اومده بود سخت، براشفته و نگران بودن به تندی راه اعماغ جنگل رو پیش گرفتند و رفتند ده برادر در ادامه راه خودشون به منطقه زیبا و سرسبزی رسیدن که کلبه کوچیکی در اون قرار داشت اونا با احتیاط به کلبه وارد شدن هیچ کسی در اون کلبه نبود و دوازده برادر اونجا رو محل سکونت خودشون قرار دادند. اونا از صبح زود برای تهیه غذا بیرون میرفتن و قروب با شکاری که میکردند به کلبه برمیگشتن و تنها بنیامین بود که توی کلبه میموند و از همه چیز مراقبت میکرد. دوستای خوبم که شما باشید دوازده برادر ده سال تمام توی همون کلبه کوچیک زندگی کردند. از طرفی پادشاه صاحب دختری شد که روز به روز بزرگتر و بزرگتر میشد. دختر قلبی مهربون و چهره ملیه و زیبا داشت و روی پیشونیش یه ستاره یه تلایی میدرشد. ملکه مادر در مدت این ده سال لحظه‌ای از یاد دوازده پسرش قافل نبود و همیشه برای اونا دعا کرد. روزی از روزها که وقت رخشوی در غصب بود ملکه مادر دوازده پیرهن پسرونه رو در بین لباس های دیگه گذاشته و وقتی دختر چشمش به اون لباس افتاد با کنجکاوی از مادرش پرسید مادر؟ مادرچان این دوازده لباس پسرونه متعلق به کیه؟ مادر با اندوه و حسرت جواب داد آه دخترم این دوازده پیرهن متعلق به برادرای توه دختر که تا این زمان نمیدونست برادرای دیگه داره با تحجب پرسید برادرای من؟ بعد با لحن سرزنیش کنندهی گفت مادر چرا تا با حال درباره اینو به من چیزی نگفتی؟ و بعد توی چشمه یه رمگیر مادرش کهیدی شده پرسید اونا الان کجان؟ مادر به دور خیره شد و زیر لب گفت خدا میتونه خدا میتونه اونا الان کجا چیکار میکنن و بعد دست دخترش رو گرفت و به اتاق انتهای قص برد و دوازده تابوتی رو که پادشاه برای اونا ساخته بود به دختر نشون داد و گفت میبینی اونا قبل از تولد تو از اینجا فرار کردن به بعد تمام ماجرا رو برای دخترش بازگو کرد دختر که قلب مهربونی داشت به مادرش گفت قصه نخور مادر من به دنبال برادران میرم و اونا رو حتما پیدا میکنم قصه نخور مادر در دوازده قیر برادراش برادرش رو برداشت و راه جنگل رو در پیش گرفت و سرانجام خسته و گرسنه به کلبه ی کچی که میان جنگل رسید آروم وارد کلبه شد بنیامین با دیدن دختر از جا پرید پرسید تو تو کی هستی اینجا چیکار میکنی دختر با مهربونی جواب داد من دختر پادشاه هستم دنبال دوازده برادرم میگردم بعد دوازده پیرهنی رو که همراه داشت به بنیامین نشون داد بنیامین که دریافت این دختر زیبا خواهر خودشه با خوشحالی گفت من بنیامین کوچیکترین برادر تو هستم بقیه برادر رو به شکار رفتن و غروب برمیگردن دختر از شادی به گریه افتاد بنیامین به خاهرش گفت خواهر من کمی نگرانم دختر با تعجب پرسید نگران نگران چی بنیامین گفت من و یازده برادر دیگه سوگند یاد کردیم که هر دختری رو دیدیم نابود کنیم دختر با کمال شجاعت و غرور گفت من با کمال میل برای آزادی برادرام حاضرم بمیرم برادر و خواهر چنان قرق صحبت بودند که فراموش کردند وقت غروبه و موقع بازگشت برادرای دیگه در همین موقع یازده تا برادر از راه رسیدند. بنیامین فورا دختر رو در گوشه از کلبه پنهون کرد برادرها از بنیامین پرسیدن «خاب! امروز چه خبر؟ بنیامین گفت خبر خوش فقط باید قول بدیم اولین دختری که دیدین اونو نکشین و برادرها قول دادن و بنیامین دختر رو صدا زد و حقیقت بر همگان آشکار شد از اون روز دختر و بنیامین در کلبه میموندن و یازده برادری دیگه برای تیگه قضا به جنگل می رفتن اونا در کنار هم زندگی خوبی داشتند تا اینکه روزی از روزها دختر در باغچه کنار کلبه دوازده گل سپید سوسندید و تصمیم گرفت اونا رو برای دوازده تا از برادراش بچینه و این کار رو هم کرد اما به محض چیدن گلها دوازده برادر به شکل دوازده کلاق در و به آسمون پرکشیدن و کلبو و در یه چشم هم زدن از نظر محف شدن دختر با شگفتی به این طرف و اون طرف دوید و عاقبت پیرزنی رو دید پیرزن پرسید اینجا چی می چرا دوازده گل سوسن رو چیدی؟ ها؟ اونا برادرای تو بودن و حالا برای همیشه به کلاخ تبدیل شده دختر شروع کرد به گریه کردن و با بغز از پیرزن پرسید یعنی هیچ راهی وجود نداره برادر من آزاد بشن؟ پیرزن جواب داد فقط یه راه وجود داره اونم اینه که تو به مدت هفت سال ساکت بمونی و حتی یک کلمه هم به زبون نیره دختر قول داد که این کار رو انجام بده و خلاصه راه افتاد و رفت و رفت و رفت تا به درخت بلند رسید از اون بالا رفت و به رشتن پنبه مشهور شد در همین لحظه پادشاه اون کشور برای شکار به جنگل اومد و چشمش که به دختر افتاد ازش خوشش اومد و از دختر خاص کرد اما جوابی نشنید پادشاه یه بار دیگه از دختر خاص کرد و این بار دختر سرشو به علامت رضایت تکون داد جشن عروسی مجللی برپا کردن و دختر به عقد پادشاه در اومد سن سالی از این ماجرا گذشت و در این مدت دختر کوچکترین کلامی به زبون نیاورد وزیر پادشاه که زن بدذاتی بود اونقدر بدگویی دختر رو نزد پادشاه کرد که پادشاه خام شد و دستور داد دختر رو در میون شعله آتش آتیش بندزن. دختر از دستور پادشاه باخبر شد ولی بازم سکوت کرد به دستور پادشاه دختر رو به تیرک پستن و شعله های فروزان آتیش رو در یک لحظه به دامن لباس دختر انداختن و آتیش دامن دختر رو در گرفت. آخرین لحظه هفت سال سکوت دختر تموم شد و دوازده کلاغ از راه رسیدن و بر زمین کنار شعله های آتیش و به شکل دوازده تا دو پسر در آمدند. بله. اونا برادرای دختر بودن و خواهرشون رو از میون شعله های آتیش نجات دادن دختر که دیگه حق گشودن زبونش رو داشت تمام ماجرای سکوت خودش رو برای پادشاه تعریف کرد و پادشاه هم که به ذات بد وزیرش پی برده بود دستور داد وزیر بدجنسش و بدخواهش رو در بشگه پر از روغن داغ انداختن و همه با خوشی و شادکامی در کنار هم دیگه زندگی کردند. افثانه زیبای دوازده برادر رو براتون نقل کردم بله افسانه‌ها ها روایت گذشتن که نشان از آینده دارن از طریق تحلیل دقیق قصه ها و افسانه ها میشه به پیشینیان و نسلهای بسیار قدیمی پی برد قدر این گنجین های رو بدونیم و از اهمیت اونها در شناخت روزگاران کهن و رمز و رازشون قافل نباشیم این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله ویراستار سهیلا کریمی اجرا مهران دوستی سوابردار هیدر صفتری اسکویی و تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرود